وجدان الهی رباسار ترس گفتنی ها بسیارند نوشکی ارتعاشات محکوس میآفرینند و تو را وادار به عقبگرد می کند تو هرگز نمیتوانی توانی در کاری که روح انان آن را در دست دارد تعجیل کنی زیرا روح هرگز نیاز به تعجیل ندارد. چون تا به ابد فرصت دارد تا کارش را به انجام رساند هر اندیشه ای که می کنی آفریننده یک نیرو یا یک عنصر وجودی است وقتی فکر می کنی و اندیشه خیر برای هر کسی میفرستی به سوی اس باز گردد اما مأملوب از ثمرات هزار باره از برای تو که در تو باقی میماند باز هم در این مشغولیت های خیل به سوی کسانی دیگر گسیل شد پس مگذار ارتعاشاتت مخدوش شوند چون چنانچه به خاطر داشته باشی قدرت مطلق خدا در تو به ودیعه گذارده شده است افکندن این قدرت مهیب به سوی هر چیزی یا هر کسی با هر انگیزه ای مگر عشق یقینا رنج بسیار و احیانا مرگ وی را در پی خواهد داشت فكر صلح عشق شادی و وفور برای همگان را در دلت بپرور درک میکنی سعی دارم چه بگویم پال مطمئن نیستم ربازارتارت میخواهم با تو درباره نور سخن بگویم آنچه به سویت میآید و تو را ادراک می بخشد. در همین حین درباره صوت هم سخن خواهم گفت آن بلاخره ربازار طرز. من خدای مطلقم کل عالم در من جای دارد و من در همه چیزم کل هستی در من آغاز می شود و در من پایان می گیرد اسرار عشق حکمت و فهم گشوده شده است و آن خیشی که درون معبد خاکی محبوس شده است بوی سبقت از اندیشه می رو باید روح از سایر دوندگان پیشتر می دود. آن روح است، من است، و اینک خدا قادر مطلق نور همچون لوح کرکننده ای از های خالص از درون به بیرون می ترابد. موسیقی هفت گنبد آسمان به گوش می رفتد. من می توانم همه را ببینم و همه را بشنوم. من بر فراز جهان ها و دو خدا در دو سویم ایستاده هست یکی را می شناسم اما دیگری وجودی خداوندی با چهره ای تابناک هست در زیر جهانها تاریخ را چون نمایشی بر صحنه میگذارد و آفرینش نوین همواره درونم شکوفا می شود تا به کیهان هایی بدل شود که هنوز چشم بشر ندیده است عشق درون کال بدم جاری است و چون امواجی از ذرات گردان میرود تا عالم را در برگیرد بشر در این اقیانوس بی انتها ذره ای بیش نیست او در جستجوی بازگشت به من تلاش میکند اما نمیداند که خلوص و صمیمیت کلید قلب من است بی‌ملاحظگی او موجب میشود شود جستجویش به مرگ بی انجامد آدمی بر ضد من میجنگد اما تنها به خود آسیب میرساند کسی که کوشش کند به من یا معشوق من لطمه ایوارد وارد سازد تنها باعث انهدام قالب خاکی خود می شود روح ها بر پشت اقیانوس من میتازند. آنان که از عشق خداوندی من برخوردارند خود اقیانوسند و آنان که بر علیه من اراده می کنند در سکرات مرگ قوت ور عشق به من عشق به بالاترین است زیرا من در همه ی حیات نفوذ دارم در جهانی که من بر فرازش ایستاده و بر همه عالم مینگرم، نور شهتی شیرین عشق و سعادت و صوت تسلایی نهن و لطیف است چه کلامی به کار گیرم که گویای رحمت شعف و شکوه من باشد عشق من مانند برق سائقه است که لحظه ای سیاهی آسمان را می دارد. این راز نتوانم گفت چون بشر خطاکار است نه من خدا نور من همواره حاضر است آدمی باید آن را بجوید و به تصاحبش مغرور نشود بشر نمی‌تواند آن را همچون دیگر پدیده‌های های صاحب شود نور یک تجلی نیست بلکه قدرت من است که حیات را به اوال می میریزد آدمی به سوی وضعیت هیچ بودن تکامل میابد چون من هیچم معدالک همه چیز در عرصه خالیای خداوندی تحت نفوذ من است من فراسوی زمان، واقعیت و مکانم بشر مرا نخواهد یافت مگر دستن خیش بردارد کتابها، آموزگاران و نوشتهجات آسمانی در اقمی من جایی ندارند من قادرم این همه را به بشر ارزانی دارم من قادرم آدمی را تا به اقالیم بهشتی سعود بخشم و او را نور خیش سازم زیرا او خود نور من است اما افسوس که در نمیابد کل اسرار درون من و تنها درون من است چه بالا و چه در زیر همه حامل آن رازند لکن هیچ بشری آن را نمییابد مگر با عشق به سوی من آید چنان چه بشر به جستجوی راز من برخیزد آن را خواهد یافت این دانش افناک درون قلب وی نهفته است هرچند قلب او همان قلب من است راز رسیدن به من نه عشق، است، نه شعف، نه سعادت یا مطلوب دیگری که ممکن است در کتب آسمانی بیابی این راز در فرقه های اسراری، مکاتب فوق طبیعه و آموزش هایی که بشر معنوی میپندارد یافت نمیشود راز دستیابی به من فراسوی دانش خیش یا دا آنچه در جهانهای زیرین قانون طبیعت نامیده اند قرار دارد این را به تو میگویم صدای خدا اون است که این راز را بر تو فاش می کند آن صدای من است اگر به دقت گوش فرادهی می توانم آن را در گوشت زمزمه کنم راز تمامی رازهایی که آدمی می جوید و هرگز نمی جوید پشت پرده ای به نام توهم و خود فریبی پنهان شده است تا روزی که بشر به آموختن دانش حقیقی و ماورایی من مبادرت نکند دانشی که به او راه رهایی از ذهن و ماده را نشان داده و تماس وی را با روح خداوندی من میسر میسازد این راز را در نخواهد یافت نزدیکتر شو ای بشر زمینی من آن را در تو زمزمه می کنم به زبان ساده راز درک روح خداوندی من قدرت هست قدرت مطلق بشر این را نمیداند که قدرت راه به سوی خانه حقیقی اوست فضای درون قلب من مزالک نه آن قدرتی که او در زمینی می شناست. این قدرت خیش متعالی او حکمت خداوندی نهفته درون وی و به کارگیری قابلیت روح است تا قدرت من قدرت او شود وحدت با خیش خداوندی من وضعیت مطلق خدایی چه کسی قادر است این قدرت الهی را به منظور درک بشر در قالب کلام اوست درآورد. سادهترین عبارت ممکن قدرت خداوندی جریانی است که از کالبد کیهانی من بیرون می‌تراود تا تمامی عوالم را بر پا نگاه دارد. می‌توانی آن را نور و صوت بخوانی. آدمی با آن با اکنامی برای آن قدرت است. چون نماد هر دو جنبه یعنی هم نور و هم صوت می باشد بشر باید در جستجوی آن براید شامل بر آن شود در آن استاد شود آن را به همراه خیش منفرد و وحدت یافته خود در تصاحب و به خدمت خود گیرد من راز آن را میدانم و به بشر میگویم زیرا نه مذاهب نه مکاتب ماورا و طبیعه و نه هیچ آرفی هنوز ارزش حقیقی استادی اکرا در نیافته است آن را باور دار، چون طریق تخنگفتر من با بشر است نزالک از سایر حواست بشر ماوراییتر تر نیست بنابراین به خاطر داشته باش که هرگز به آن قدرت اجازه نوسان نامحدود ندهی و مگذاری خود کامی سایر حواست شود بگذار آگاهی خداوندی با خویش قدمت در هماهنگی زندگی کند به جهانهای من مخلوقات من و همه عالم عشق بپرز حتی اگر مستحق ترحم باشد دلسوزی را پناهگاه خود ساز در هوشیاری کامل از قدرت بالحقه عمل کن کسی که را درک کرده باشد هدف هیچ صدمه ای قرار نمیگیرد. آب نمیتواند او را غرق کند نه شمشیر و نه گلوله نمی تواند او را مجروح سازد آتش جسم او را نمی سوزاند و هیچ بشری نمیتواند او را با تیغ تخمت منحدم کند یا با خشم آزرده سازد هیچ ضربه ای به جسم او لطمه نمیزند و استخانش را نمی شکند هیچ علتی موجب مرگ بیماری یا رنجوری وی نمیگردد هیچ مخلوقی در جهان آدمی و هیچ یک از ساکنین طبقات گردون به هیچ طریقی نمی تواند در مقابل نور و قدرت خدا تا به مقاومت آورد روحی که قدرت خدا را درک کرده باشد هوشیاری خداوندی را درک کرده است او روح به معنای حقیقی است و بخشی از کالبد خداوندی و کیهانی من شده است او در جهانش به چیزی محتاج نیست چون من همه را به او ارسانی می‌کنم کتاب‌های مقدس قوانینی ساخته بشرند و دوباره و دوباره به قلم مقامات روحانی نگاشته شده‌اند محتوای آنها احکام اخلاقی و مقرراتی هستند که به منظور حفاظت این مقامات در مقابل آدمیان وز شده است کسی که مکتوبات مذاهب اعظم را نخوانده و از نظامهای فلسفی هم چیزی نمیداند به من نزدیک است او مجبور نیست فراموش کند بسیاری از کتانی که به قصد به زمین آمدند از جانب هیئت خداوندی من معمولیت نداشتند آنان روح‌های گمراهی هستند که تطور می کنند طبقه سیری خانه حقیقی است. در حالی که جز منزلگاهی برای آموزش حکمت جهان زیرین نیست. اشتباه آنان تنها در این بود که میپنداشتند پنداشتند دانش را در اختیار دارند. به صدای من گوش فراده. جویندگان نور من می‌دانند که من قادرم قدرتم را به هر آن کس که آن را به ارزانی دارم. رضا زین که آن قدرت کجا بیاوی بی و با آن چه کنی؟ هنگامی قدرت من به فردی شد، مسئولیت او در مقابل علت الهی محرز می شود. دیگر از تقدیرش گریزی نیست. آنچه تلاش کند از آن به به نتیجه ای جز آشوب در کیهان خود نمی رسد بعد از اینکه بشر قدرت را از مجرای روح تجربه کرد خداگاهی به معنی خود محوری کال و جسمانیش را از دست می دهد اینکه از طبیعت سگانه قدرت حکمت و برکت بیپایان برخوردار است اما حواستش از دنیا باخبرند اما در جایگاه خدا من آگاه مطلقم چنانکه آگاهی خداوندی من در ذات استقرار دارد، نه در صورت این وضعیت از بودان در قالب هوشیاری کامل من و به صورت کیفیات روشن واقعیت محسوس متجلی می شود همان عوالم مخلوق و حیاتی که بر آنان است تمام شد ربازار تارز من قادرم هرگاه که بخواهی تدروبه خداشناسی را برایت میسر کنم اما یک درک خداوندی به معنای حقیقی نخواهد بود بلکه تنها باستابی از طبقات بالاتر است تو بر فراز طبقات زیرین در کنار خداوندگار رامکار و نور سه جهان زیرین را نظاره کردی سپس همچون عک شدی و همه را دیدی اینک قادری ببینی و بشنوی و حکمت عوالم درون را بدانی هرگاه برای طبقه چهارم آماده شدی من تو را به آنجا خواهم برد. من می توانم در هر لحظه تو را به هر عالمی ببرم اما شروط بر اینکه روح شرایط لازم را برایش احراز کرده باشد. پاد آیا آن تجربه شعور کیهانی بود؟ آری، شعور کیهانی فقط درک نور طبقات زیرین به ویژه طبقه است. بسیاری از مردم این نور را دریافت می‌کنند و می‌پندارند به آگاهی کامل خداشناسی نائل آمده‌اند. بسیاری از آرفان دوران باستان به تجربه ای بالاتر از طبقه اصیری دست نیافتند معذالک مکتوبات هنگفتی در وصف شکوه و جلال آن برای ما نگاشتند دنیا هم هنوز تجلیل و ستایش این آثار را به منزله برترین ترچشمه نور به جای می آبرد. این را هم بگویم که بشر در زندان جهل خود درکه چندانی از عوالم ماورا و شکوه حقیقی خدا در اقالیم ناشناخته ندارد یک روز تجربه ای را برای فراهم خواهم ساخت که از طبقات برتر و منزلگاهی که خدا در آن فقط در هیئت روح خداوندی حضور دارد رخ می‌دهد. آنگاه خدا را به معنای حقیقی خواهی شناخت عدد کتانی که در جهان امروز به این تجربه رسیده باشند آن چنان معدود است که میتوانی آن را با یک دست بشماری